بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله على الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت الدائمت و علا دائم مجمعین اللهم افقنا ورحمنا برحمتی که آرحمن چون در مقام تعرض روایات بودیم در باب 120 از این کتاب جامعه الاحادیس از کتاب اشره که متعرض 119 متعرض قیبت شده در باب 120 متعرض کفاره قیبت شده ایشون عنوان باب رو البته من, من سابقا هم ارز کردم اینطور که ما شدید مرحوم های برو جلدی نظر مبارکشون برای این بود که ما در عنوان باب رو نکنیم بسید اینشون باب اگر کفارت الاخیام ال استغفار لصاحبه هی او تحلیل او. اینجا خوکم کرده ظاهرم اون نقطه ای رو که در ذهن مرحوم های برو اوده اگر اون نقلی که ما شده مراعات نشده مثلا اگر معتبر بود. اینجا بگیم باب کفارت الاختیام ما نه بگیم کفارش اینه تحلیل استغفار لساحبه است. این رو بگذاریم شعن فقیه اون فقیهی که نگاه میکنه مسئله رو او به اصطلاح در بیاره که کفاره ای شیه. چیه خود ما چیزی نگیم و همین هم درسته اصافا صحیح هش همینطوره این تقریبا وقتی شومی استنتاج نکنید نتیجه باب رو و در عنوان باب قرار بینید مخصد اگر معارض باشه این در حیبتی نوع کار فقهیه ما باید سر کنیم در درجه اول یک کار حدیثی بکنیم یعنی مجموعه احادیث رو جمع بکنیم اما کار فقهی استنتاج و فتوه این مال مراحلیست که بعد خود فقیه هم من گاهی عرض می کنم که چون اونی که من نهار کردم ظاهرم اون مطلب رو آیه مرموع افتهی نهار کردم برای ما ظاهرم فکر میکنم افتهی که جز اون اصحاب لجنه آقا رو جلدی بودن در مسئله جمال احادیس در کتاب کافی ارز کردم کافی موظم این باب رو در بسول رو برده جلد دوی اواخر جلد دو که اذا من اصحابنا انا احمد بن ابي عبد الله که اینشون شو برقی پسر احمد برقی انا ابي محمد برقی و ابو محمد الله خالد برقی انا هارون بن جعف عرض کردم یه ارماتی هم گذشت که خود پسر از هارون به نظر اشتباه باشه این درست همین یاد باشه انا ابي از محمد برقی از حارون امن جه از خود محومه محمد برقی مشایخ کوفه رو در کرده شواهدی هم است که احمد رو در کرده خیلی پیشی ما شواهدش روشن نیست و مضافاً اینکه که در هم کتاب شیخ فیرسد شیخ و هم فهرست نجاشی هر دوشون کتابی برای خارونه ابن جهم نقل و برای کتابم هم برقی پدره اونجا هم همینطوره شواهد مؤید همینه که باید انعبیه باشه ان حارون ابن جهم ان حفظ ابن عمر و قاید ان ابن به اسطلاح اینجا 7 نه عمر یا عمر عمره نه 7 اینجا 7 سبن عمره عمر عمر الان 7 نه عمر تو ذهنم نمیاد که کی باشه من خیال کم نسخه من عمره نه 7 و آن فعلا باید 7 نه عمر نگاه بکنیم که وضعشو ببینم الان تو ذهنم نمیاد لکن هارون نمیل جهم از هفت قیاس نقل میکنه حالا احتمال داره اینجا هم باشه اشتباها چار شده هفت سبنه آمد من ارز کردم در کتابات قدیم قیاس رو مثل با قیاس نیمی نوشتم قیس می نوشتم علف رو نمی نوشتم علف در خط کوفی نوشته نیمی شود. ممکن بود کلمه ایده ایست وقتا نختر کناش با عمر اشتباه بشه این عبی عبدالله الان نمیدونه هفت سبن عمر کیه این عبی عبدالله علیه السلام موجم هست تو این کامپیتر شما موجم آی خوری این هفت سبن عمر بیده همه بهتراش همینه این عبی عبدالله علیه السلام قال سوئلن نبی سالالله علیه و آله ما کفارت و اختیام اگر ذهن آقایم با چون فاصله زمانی شد وقتی که روایات و از کتاب عددرالمنصور سیورجی خوندیم در باب غیبه این روایات کفار اختیاب هم اونجا بود حالا به چند تعبیر یکیشم این بود قال تستقفر الله لبن اختبتمو کل نما زکرتمو این البته من نشد نگاه بکنم این کافی چون چاب جیل هست فرصتی نشد احتمال میدم شاید تو این نسخهی که ادعا کرده کلما باشه این کما باشه احتمال بسیار قوی اگر این کافی جدید در این کمپیترتون هست ببینیم که اینو کلماستن توی این دوری درمید آرد کفت کماستن در توسن چیا؟ در کافی کلماستن توی این دوری درمید خواب ولی باور از بعض شده دیگه چیز خودش نه نه. نه نه. از خود فقیه هم چی بین فقیه چی داره هم در فقیه هم کما است. همون با درست بشه کمال با درست باشه. نه اینکه هر وقت روزمره استغفار بکنه نه همونطور که اون اسمش رو بردی به غیبت همونطور هم برش استغفار بکنه. تو چند ی هفت سب نعومد بجلی هست و هفت سب نعومد هست چندین نفره که خوب همین هست در موجم نسمشون رو گرده نه خیش صاحب کتاب نیستن نه کتاب؟ همه به نزی و از شیخ اسم برده یه هفت سب نعومد هست رجال رجال شیل یه هفت سب نعومد هستن سالی هستن دوباره یه حرفه معمولی خفیش دوباره رجا باشه یه حرفه معمولی هست اونم یه هست نه اونطور باشه باشه من خیلی مشغوله نه این احتمال میدم همه حرفا قیاس باشه احتمال اونه میدم نه اینا نیستنایی که شما خونده نیست به هر حال من توزه نمیدون من زیر من از رو من عمر ابن حفظ کنم نصفی که من دیده بودن من عمر ابن حفظ توزه نم بود ولی که واضحه حفظ ابن عمر قال سوئلن نبی صلی اللہ حالی وعده ما کفارت و اختیاب قال تستغفر الله لمن اختبتم و کلما زکرته یه روزم کلما رو خوندیم اما فکر میکنم مخواستم بعد توضیحش بدم دیگه وقت نشد توضیحش امروز میدیم احتمال میدم کلما نباشه کمام باشه و قیل از این شواهدی که الانشون فرمودن که دیروز بازی مشاهده بگیم دیروز نشده موسیقی مقل نهد این در حدیث شماره دوی همین با از کتاب جنفریاد یا از کتاب به اصطلاح به نظر ماشاد سخونی باشه به اصطلاحی یعنی علیه قال قال رسول الله من زلم احد فعابهوب خلی استغفر الله له کما ذکر ابو اینجا کما داره خلی استغفر الله له کما ذکر ابو فنهو کفاره تن له این علایه ها در این روایت هم کما داره و فکر میکنم حدیث قبلی هم باید کما باشه و از اون طرف چون در کتاب سکونی آمده احتمالاً جز به بودی بوده که سنیه ها از امام صادق نهار کردند و همه هفت سبن قیاس میخوره احتمالاً جزء اونها باشه علایه هاده جعفریات هم ما احتمال قوی دادیم که کتاب سکونی باشه فعلا این حدیث از طریق سکونی به ما نرسیده این حدیث فعلا از طریق سکونی به ما نرسیده لکن خود جعفریات غالباً دلالت مونه که در کتاب سکونی بوده فلی از سفر لام لکه ماذکر او فنه کفاره او لام این را به متن حدیث و این نشون میده که حالا طبق هم روایت قبلی هم این روایت مقصد اگه مال سکونی باشه حدیثی بوده که اهل سنت از اهل بیت از رسول الله نهار کردن حالا کار نداریم به سر صبحش باطنه نظر این حدیث رو نرد کردن تستقفل من اقتبته و خبصا در جعفریات هم هست ما سابقا کران ارز کردیم یکی از راههای خیلی مهم در احادیث اون به اصطلاح تلقیه و قبول اصحابه این خیلی مهمه حالا اصحاب ما مثل شیعه گلد در جعفله گاهی غیره شیعه اسماحشری هم اون هم مورد توجه مثلا ما از کنیم کتاب چعفریاد در مصر بوده و قاضی نعمان در کتاب دائم ازش نقل کرده ببینید این حدیث الان در کتاب دعایم نیامده در کتاب دعایم این حدیث نیامده و لذا یعنی اعراض کرده ازش اگر این حدیث هم که ما حدس میزنیم از کتاب سکونی باشه اصحاب ما هم از کتاب سکونی نقل نکرده اون جا جای توجه داره اصحاب ما هم حتی خود مرحوم کلینی از کتاب سکونی این رو نقل نکرده و البته فقید رو قبول داشته این ما احتمال میدیم احتمال میدیم ولی علم و این کتاب هارون ابن جهرمه این کتاب در آمده برقی پدر و پسر این کتاب رو در آوردن و خود هارون جهدم جنم مرحوم نجاشی اون رو تصدیق کرده از این کتاب نوسته که در قبه دو فقیه بزرگ وارق نقل کردن یکی مرحوم کلینی و یکی هم مرحوم صدوق مرحوم شیخ طوسی هم این حدیث رو احتمال میدن علم عند الله احتمال میدن چون در کتاب و کافی بوده اگه در فره بود احتمالاً میورد شیخ شواهد امانشون میده که مربوض شیخ روایات و بسول رو اون بقدارش که مربوطه به فعل بوده نیورده یا مربوض بهمی بحثه ما بوده ایشون نیورده پس تا اینجای بقداری شرح حدیث روشن شد اون هفت سمید آمر به این افرادی که بودن این خیلی مجهول هم خیلی غیروازهه یک کسی باید شبیه هفت سبن قیاس در این روتو باشه آقا هفت سبن قیاس نیستی در این حدود در بدوده حفص سبن قیاس یکی از علمای مهم احل سنت باید باشه مثل همین که اون حدیث برلی رو هم سکونی یا بعدها جعفلی یاد نهارو کرد این راجع به این حدیث اون تا اینجا روشن شد که این حدیث قبولش فعلا با این وضع موجود مشکله اون نسخه جعفریات که ما اساساً اشکال داشتیم خود کتاب سکنین هم اشکال داشتیم اینجا هم به حسب ظاهر مثلا جهارت هفت نهم، این به حسب ظاهر و به حسب اون راهی رو که ما رفتیم ظاهر این حدیث بین اهل سنت بوده با این طریق به اهل بیت نسبت داده شده این طریق که الان ما داریم دو دو که داریم جعفریات و کافی و انصافا و کسول اصول به اطمینان بهش مشکله با این شواهدی رو کرده ارز کردن یعنی حتی هم میبینیم مثل صاحب دائم قاضی نعمال هم به این حدیث تمسک نمی عجیبه با اینکه که لرم بوده در اختیار ایشان بوده کتاب جهفریاد در اختیار ایشان بوده پس اینه که مرمومه استاد نوشتن این روایات سنده زحیفه راسته این روایت ای که تستخفیق الله من تر. پس تا اینجا ما کفاره غیبت رو مثل بقیه گناهان استغفار بودیم. طبیه نالامنی از ترهای که تو این چیز دیگه یه عنوان زائدی که میخواد بیاد این باید دلیل برش بیاد. این یه عنوان زائدی بود. الاستغفار و لح. این عنوان ثابت نشد. به این مقید ثابت نمیشه. حدیث شماره سه حدیثی است که در امالیه شیخ مفید داره ایشون از ابو ابی الله محمد بن عمران مرزبانی تعریف میکنه به نظر از مورخین معروفه قال محمدن احمد حکیمی و حکیمی محمد بن اسحاق قال اخوان داوود المحبب و محبب حدس امام به نظر این از انبسه و داوود دیگه سرش مشهوره بین اهل اسلام قال قال رسول الله کفاره تو اختیار ان تستغفر لمن اخطبته پس اینکه بر نمونه شیخ مفید رو در این کتاب با این سندی ای که منتهی میشه به عامه این به نظر ما با این ت... توضیحات واضح شد که این روایتی گریشی در روایات اهل سنت نداره سعی شده به ائمه الهی نسبت داده بشه لكن الان نسبتش به ائمه مشکله فضلا از مسئله نسبتش به رسول الله و تقدم فی احادیث الباب پس این عنوان که تستق فرال منقه روشن نیست این راجه بعد ایشون و تقدم فی احادیث الباب المتقدم بله استفاده زالک من ها زالک در روایاتی که در بابی که دیروز خوندیم دیروز و پیروز و هفته گذشته خوندیم این مطلب میاد بعد اشاره کرده به بله. ولقیبه لا تقفن حتی یقفه صاحبها و روایت اثبات نه از ارز کنم که بله ما عده از روایات بود این روایت هم کردم اصلش در کتب اهل سنت آمده از همون کتاب البته راجع به این مسئله قیبت در اینجا چون مصدر اصلی مقداری مبهمه اگر در مسادر قبل از کلینی میامد خیلی مهم بود مثلا, مثلا درف غورزا میامد خیلی مهم بود که متاسفانه این در درف غورزا هم نیامده اون وقت ایشون داره که تقدم مایدول لعلا ظاله راسته، اینا روایاتی بودن مجموعه روایاتی بودن این نکته دومه که قیبت لا تو خر حتی یقفه فر صاحبا اون کسی که قیبت شده اون بیاد و به اصطلاح ببخشه و مثلا قبول بکنه از اون ببخشه او رو. این مطلب که ریبت با استرزا و تحلیل اون شخصه این دو نکته داره در مجموعه روایات یک نکتهش این رو که که دیدت اصول جزو حقوق مجرد یک تکلیف نیست مجرد یک گناه نیست یک حق رو مؤسس زائر می‌کنیم خب اگه حق رو زائر با باید چه استقلال بکنه یکیش کشینه اینجا ایشون در این باب این روایت نیامورده این ادله برمورد عادی در اینجا نیامورده این ان در کتاب می‌خونیم وقتی برسیم به کتاب خود مکاسب ان در اونجا متعرض می‌شیم یکی دیگهش نکته دیگهش این هست که بگیم تعبد در روایاته ما اینو خوندیم تو راعت آمه هم بود در کتاب دروربنسور سیوتی خوندی. روایاتی هست که عقیبتو اشد دومن از زنا که سوال میکنه چرا چون میگه در زنا ولو دستجیبه مثلا خانمی زنی طرفی حسابه هست اما اون تولید حق نمیکنه فقط ارتکار به گناه تولیده کنه خدا بیبرشده اما در غیبه چون طرف دیگری هست اینجا تولید حق میکنه این بله بله الیزا در این حدیث شماره 20 صفحه 524 از این کتابه چیز گذشت فعل نرجول یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه و الغیبه لا توخره تا اخسرها صاحبها تا اینکه صاحبش راضی بشه یکیش اینه یکی هم حدیث بعدیه بعد اثبات ابن محمد البته اون حدیث اول که خوندم وسیعت ابی عبیزره که طولانیه به اول نامه نامهی کرد اون حدیث جعلی است که اون حدیث اساس نداره لکن این حدیث به اصاند دیگر هم آمده و در میان اهل سنت هم هست خصوصا در میان اهل سنت اون مهمترش اون روایت جابر ان جابر قارقا رسول یا کو غیبه که در پشمانیات نقل کرده پس این مطلب اصلش میگه تو اهل سنت در بیاد سعی شده تو مصادر ما هم بیاد دقت میکنیم یکیش در عنوان وصیت نبیل لبیزر که این سندش قوی و یکیش در تنبیه خواتره که اینجا هم به صحیح مجمنه یعنی مرسل قابل قبولیست مجموعال بیان هم به صحیح مرسله و ایشون قبول کرده مردم شیخ صدوب رضوان را تعالی علیه به سند بسیار ضعیف از اثبات ابن محمد که ایش را میمشنسیم هم به اصطلاح یرفه و ان رسول الله قال علقیبت ها اشد دوبن از زنا و بل از فقید یا رسول الله ولی بفعال کذا این مجموعاً 3 تا روایت که در زیرش آمده که به حساب قیبت لا توفر حتا یغفرها لهم صاحبها تا اون حلالیت به طلب تا اینجا روشن شد که این دومی هم باطله یعنی این دومی هم ثابت نشد تا اینجا دو تا از عناوین آمده یکی عنوان این که از ثقیفر و له یکی عنوان این که به اصطلاح تحلیم بکنه برو پیش برو حلال تنبیم به تنبیه، حلالیت به تنبیه. این روایدی که ما الان خوندیم ثابت نیست طبعا اگر ادله خاص چیزی ثابت نشد بر به قاعده عامه و این که هر گناهی احتیاج به استخفار داره این راجع به این باب یه ای مقدار صحبت های هست که در بعض غیبات دیگه اون دعای روزی دوشند ببینه هست اینشالله این توی خود مکاسب چون یک دوره این میکنیم که نتیجه نهایی رو در اونجا عرض میکنیم باب بعدی سباب رو ایشون در قیبت قرار داده این باب بعدی رو هم ما متعبز میشیم البته مثلا باب بعدیش هم تحریم بحتانه خواه همین روایات تحریم بحتان گاهی مطالب دراجه به قیبت هم هست دیگه اونها همین. حدیث اول این باب 121 وسیعه تو نبیل علیه این هم گذشت زریفه خب، یعنی جهلیه ترکیبیش جهلیه مفرد باید حساب بکن حدیث شماره دو از امالی شیخ توسی وسیعه تو نبیل عبیزر این هم کناه هست جهلیه یعنی مجموعش جهلیه اما خود مفرداتش هست مفردات رو باید حساب کرد حدیث شماره 3 مروم شیخ صدوب منفردن حدیث تورادی تو آخر جلد چهار تو جه اول جلد چهار آورده بودن گنام حدیث مناه نوی نه نوی هر کذا کذا اینجا از ناظره بینی که اگر شما حتی شنیدیم دارن به مؤمن غیبت میکنن شما با جواب بدید سماع نکنین سماع به اصلاقی بعد جایز نیست به اصلاح این هم حدیث شماره سه این هم مناه نبیس که عرض کردم درست نیست حدیث شماره چهار این ها خب عرضشی نداشته حدیث شماره چهار رو مرموم شیخ ترسی نقل کرده اینه یک کمی دقیقه بکنیم قبلش شیخ ترسی مرموم برقی در محاسن آورده برشین شیخ صد و حوازن پر در کتاب سوابال اعمال شیخ صدوق آمده در کتاب فقیهش نیست حدستانی محمد ابن موسفن المتوکر ایشون از مشایخ صدوق برش رضی الله عنه هم گفته اصلا که سوگرات هم هست محروف و مشروع اجمالن این توصیق سریعی نشده از مثل المحقق و از مثل نجمش اینها مرحوم علامه هلی رو توصیف کرده آقای که هم اشکال میکنه که توصیحات متاخلی مشکلی مگر اینکه که ادعای تواتر اجماعی بشه تسارم بشه قال حدثنی عبدالله ابن جعفر اله این به اصطلاح همیری پدره که العاده مشهوره این محمد ابن حسن ابن حبل خطاب این قلطیه محمد ابن حسین ابن حبل خطاب درست این باید حسین باشه حسن نیست و از اجلای اصحابشون اهل کوخه هست پس تا اینجا صدوق اهل قوم این اگر آقای یک تنزین فنی بر روایت بکنیم بعدن زیر هر کدومشون نیزیم صدوق قوم محمد بن موسف ابن, ابن متعکل قوم عبدالله بن جعفر حمیری قوم محمد بن حسین ابن عبدالخطا کوفه بلیزا از نظر فنی یکی از جهاتی که در احادیث بررسی میشد همین بود که اگر یکیش از قرح هستی که شد شهر دیگه این کیفیت ارتباط اینها را هم بیان بکنیم از کرده اینکرارم برای مرحوم همیاری به کوفه آمده و مسادل کوفه رو نهر کرده. خب پس اینجا مشکل نداره اندال حسن محبوب محبوب هم از بزرگان کوفه پس محمد نروس کوفه حسن محبوب کوفه انا علی بن رباب هم کوفه ان عبد عبلورد. این عبد الورد رو نمی‌شناسید لکن اعتماد طبیعی ما در رجال این گفت علمی کوفه رجال علم سینه قاعده هر کسی که مثلا علی بن رباب یا حسن محبوب از اون نقد بکنه این با شخصیتی باشه احتمالاً از شخصیت محترم شیعه بوده اسمش رو معرفی نمی‌کرده اصلا بین سنیا عنوان داشته می‌خواسته حبس کنه عنوانش. این معنی میشه برهات شخصیتی بوده. چون علی بن رباب از شخصیت‌های بسیار بزرگ ماست. علی بن رباب شخصیت فوق العاده به بنظرم همین علی بن رباب بوده که با اون که چون شیعه بوده، برده داشته. بوده متسن دو طرف، جزو خوارج میفته، جزو شیعه بوده. یزیدی، مرتقیص کتاب برای اصحاب نعمون در مجلس کوفه بهشون گفته بیان آوادان برادرش هم دید آمده اون خارجی بهش گفت که از ها خوب بریم بود حاضر اون حیث عج بطوریم اون گفت نه بگو من دیشب خواب دیدم که شما نشستسی و که جمع شدن بودن تو ما حدیث نون لضا من آمدن اینجا گووش بود حال یا حاله بسیار مرد بزرگبارری است این اولوق از قزیلم حدیث داره احتمال میدیم ما ایشان شخصیت بوده اسمش رو مخفی کرده در حال احتمال شما مییم این حدیث الان سندش به استثنایی اولورد دیگه مشکل نداره من بلا نه واقعا من پسر ابن ورد داشته اسمش اولورد لیکن به کنیه مشهور نبوده الان من خودمون تو بغضیم خیلی به یک اسمش رو زن شیرازی اسمش تو از اون چیز دیگری این گروه میشه اینطور میشه به یک اسم حروف میشه اما به اسم دیگرشن من عوی این من ارز کردم در این بحث قبلی که اهل سنت یعنی حدیثی که معلول باشه یا علت داشته باشه و با قول ما داشته, داشته باشه یا مرسی یعنی داشته باشه این قبول نمیشه این حدیث رو چون بعضی از آن بعضی درست از من پرسن معلول این حدیث رو هم اونا معلول میدونن همین حدیث رو الان یعنی الان سنت به استثنان اولورد خیلی خوبه اما معلول هم همین که حدیث معروفی حدیثی است که به حسب ظاهر خیلی خوبه مشکل نداره دقت میشه مراجعه میشه به مشکل برخورد میکنه دقت میکنه این به مشکل برخورد میکنه ارث فرهم به که مشکل این حدیثا مشکل نداره ولی در ما معلولی گونه این حدیث در قم توسط در کتاب محاسن برقی هم بوده در کتاب برقی اینطوره، برقی ان محمد بن علی برقی این رو از محمد بن علی سیرفی نقل کرده ای نه این معلوم نیسایی هم است فرد اشکاس هر محمد بن علی سیرفی که گفته شده اشهر و کذابی انل حسن ابن محبوب دقیق کنیم ایشون از کتاب حسن محبوب ان اول وقت در اون نسخه ی محمد بن علی علی ابن افتاده اختاده مستقیم رفته رو عباد یعنی این که می آمدن می این آقا دور این آقا مثلا کتاب که قابل اعتماد نیست این رو ها چون مقارنه میکردن کردن وقت فهمیدن که این طوره بوده یعنی این به اصطلاح مشکل داشته من و اخ راجب به متن در نسخه محمد بن علی کوشی راجع به متن یک مشکل داره که علی بن رباب حذف شده یه مشکل دیگه هم راجع به روش سند ها ولی از این سند این چه داشته راجب به متن هم مشکل داشته در متنی که مرحوم صدوق نقل کرده من اقتیبه اندو اخوی المؤمن فنصره او عانه او نصره الله فدنیا و آخره. و من اقتیبه اندو اخوی المؤمن فلمیان صوره و لامیو انها و لامیث فعان. این لامیو انها ظاهر نسخه بدال باشه. و هو یک و خفظ الله فدنیا و آخره. در نسخه صاحبال اعمال خفظه الله اما الا خفظه الله اما در نسخه محاسم الا برداشته خفظه الله و همین حدیث به صورت مرسل در کتاب مومن منصوب به مرحوم و سعیل کتاب مومن رو بیشون نصف دیدن کتاب نسخهش در اختیار محقی کتاب نبوده جمع کرده از که بهار و اینها هر جنها که از کتاب مؤمنان جمع کرده چاپ کردن چاپ سو کتاب مؤمنه ایشون در کتاب حسین سیده علی تا تحلیل صحت اسناد این مطلب بوده چون مرسلا نمی جعفر این همین مطلب رو آورده این در این کتاب با اینکه مشخرا نیست به جای خفزه الله فزهه الله و, فزه و, و همینم هم بهتر میخوره انسان‌ها اون وقت روشن شد نکته اساسی اینه که به الان براتون توضیح دادن در حقیقت قومی ها از دو راه از کتاب حسن محبوب نهر کردن یک راهش که صحیحه مرموم صدو برده که از راه همیانی رفته به کوفه و رفته به یک راهش که اصحاب اشکال میکردن و اون راهیست که برقی آورده. از راه محمد نعلی سیرفی نقل کرده من کرارا نهارز کردم ما رقایات الان نصورتا معتناب بگید داریم در خود کافی که این محمد ابن علی هست و تو بحث و اصول هم از کردیم نقطه اصاسی چی این محمد ابن علی راوی از امام نیست ایشون راوی کتبه مثلا در اینجایشون کتاب حسن محروم نرفه و چون اهل با مبارنه می کردن این حرفی که نبا کرده درسته دو نقطه اختلاف داره با اون نسخه معتبر با اون نسخه معتعصب دو نقطه اختلاف داره یکی این که علی بن رباب اثر حذف شده یکی کلمه الله از متن حذف شده در نسخه محمد بن علی مهد محمد بن علی سیرافی دو مشکل داره البته این حدیث بسه الان به حسب سند مشکل داره به هر حال خاطر اینکه اول وقت توصیل نشده و فعلا نمیش نسیم از کلم به اصطلاح فقاهه نشون بوده که ایشون باید مرد بزرگی باشه اما درست تطویل نمیکنه این هم راجع به حدیث تا اینجا چهار تا حدیث بود که نسبتا حدیث بهترش همین حدیث سوابال اعمال بود و نمیدونیم های چرا مرموم صدقی در کتاب به ما در کتاب فقیهش نایه برده خیلی عجیبه در صحابه لعنمان رو برده حدیث شماره پنج مرموم شیخ مفید در کتاب روزه این رو مرموم مستدرک نقل کرده از روزه شیخ از کلم روز روزه که من دیدم به همچه کتابی رو به ایشون نسبت ندادم و مستر مرموم مستدک مجموعه شهیده چاپ شده رو بود روایات به خط شهی توسط شاگرد ایشان چاپ شده قال علقیبت و کفران و مستم آله ها و رازی به ها مشرکان ارتوفه انقال مالهی سیفی قال ذاکه بهتانان اما یعنی این تعبیر الان اثباتش خیلی مشکل کفر یک مرتبه از درجات نهی که کفر مستده حدیث شماره شش اون حدیث شماره پنج مشکلاتش خیلی زیاده فقط ارسال نیست مسترش هم نیست حدیث شماره شش مرموم شیخ صدوق عوی صدوق پدر ان علی ابن ابراهیم تا اینجا مشکل ان عبی، ان حسین ابن یزید نعفلی نعفلی معروف دیگه ان اسمایل ابن زیاد سکونی این همون کتاب سکونیه و وقت این کتاب سکونی ارز کردم این بعد از ابراهیم نهاشه شهرت پیدا میکنه حالا ما ببینیم شهرت این کتاب تا چه حدی. الان تا اینجا مرهوم صدوق آورده یعنی این رو مرهوم کلیگی نه برده. تا اینجا الان مرهوم صدوق رزوان الله تعالی عله آورد این یکی الله علیه وآل شعبی خونیم قال غلام صلی الله عن ارز آخریه المسلم یا مؤمن و مؤمن وجبت له جنّع البته. اتّن دیگه چهارش این آن وقتی نه فقط اثبات و ورمات نمیکنه. برادر انسان که نکسی بیبک میکنه، ایشون توجیه میکنه و جواب میده. یک مسالهش همین کتاب سالباد آمان. مساله دیگه در جعفریات به اسنادی یعنی علی ابن از پر همون کتاب سروریه هم. خب تایید شد نسخه بوده که در مصر بوده مستر سه برای همین حدیث امالی چون ابن توسی به توسی هم نسبت داده میشه چون برموم شیل توسی نشسته بودن این احادثی می خوندن. پسر ایشان بینیوشی رضا به پسر نسواردن اخبر و اخبرنا الشيخ الاجد المفيد ابو علي حسن بن محمد این صاحب کتاب یعنی این کسی که جمع کرده ایشون معروف از ابو علی ابو علی پسر شیخ طوسیه چون خود شیخ طوسی ابو جعفر اشتباهش وقت المفيد مفید تقریبا به اصطلاح مثل استاد پروفسور اون زمان در اصطلاح اون زمان کسی که در حد صاحب نظر بود مفید میگفتن شیخ مفید به این هم لقب مفید دادن به پسر مرموم شیخ دوزی از بسه مفیدی در همون مرمومه مفید معروفه به اینچون هم گفتن کاره گفتن مفید سانی به نظر یا مفید سانیه که دیگه شده باشه قال حدیثم اشکه سعید الوالد ابو جعفر قال اخبر ما محمد ابن محمد این محمد المحمد همون شیخ مفید معروفه محمد ابن, مفید. اخبر ابن محمد ابن نامان شیخ محمد قال حدیثم اخبر ما ابو القاسم جعفر محمد. ایشان صاحب به همین کتاب کامل زیارت ابن بولهوی جعفر ابن محمد ابن بولهوی صاحب کامل زیارت قال اخبرنا ابو حری محمد ابن حماد ایشون از بزرگان اصحاب ما در کوفه در بغداد خوب دقت بکنین مربوم ابن بولهوی خیلی روایت شو از کتاب کافی نقل میکنه شاهد کلینی لکن اینجا رو از ابن حماد قال حدثنا محمد بن زیاد از بزرگان واقعی ها است بن در کوفه بوده سی متوفای ده قال حدثنا ابراهیم بن عبیدالله الله که درست می شناختیم حدثنا وبی بن سلیمان درست سنی باشه قال حدسنا اسماعیل بن مسلم سکونی این یه راه دیگری است به کتاب سکونی از غیر طریق نوفلی حالا چون ما سیر رو گفتیم میشه این شما همین رو هم بگید را از اولش امالی پسر شیخ توسی اخبرانا ابو علی مفید یعنی پسر شیخ ایشون نجف بودن اصولا امادی در نجف تنفیق شدن بعد از سفر شیخ توسی به نجف در سال 40 و پنجا به نظر اولی مجالس امالی 40 چون تاریخ داره من اول در نجف سالفنا ایشون از این ایشون پ... از پدرشون این وقت نجفه اما خود مرموم شیخ توسی بغداد بودن بعد نجف آمدن حد در سنا شیخ مفید پس شیخ توسی نجف بغداد شیخ مفید بغداد مرموم ابن بولوی ایشون هم بغداد البته اصلش خوب بوده ساکن بغداد شد اخبرنا ابن حمام ایشون بغداد ابن حمام از بغداد رفته به کوفه هم اخبرنا همهد ابن زیاد این کوفه هم کربلا باشه همید گوی خواب دیده که در خدمت سید و خواهد بود ازا کوفه ببین کرده اما ساکن کربلا شد تا همونجا هم فوق کرد حالا بداخل کوفه و کربلا یکی حکم آله حدسنا ابراهیمین عبید الله یا عبدالله و ربیه ابن سلیمان به احتمال قوی از کو اهل کوفه باشن انه اسماعیل ابن مسلم که اهل کوفه است انه ابی عبدالله جعفر ابن محمد این روایت پس معلوم شد که از کتاب سکونی است لکن از اون نسخه مشهورم هست لیکن اصحاب ما نوردن، این را مرموم شیخ صدوق در سواقل اعمال آورده. روشن شد انشاءالله داره این هم راجعه بگیم این مقالی شرح تاریخی ده بگیم که بعد در جاهای دیگه به درزان نخواه بعد همون رو داره یه اضافه ای هم داره و من اطیه علیه معروفون کسی که یک کار خوبی برای اون انجام داده خلی و کافه اون هم مقابل به مقابل انجام بده اون هم شبیه اون یک کافه از کف معنی مناسب کف او یعنی همشهنه و هم رتبه او اونم یه کاری که هم رتبه اوز انجام بده فعن عجزه فعن اگر عجز شد ظاهرم فعنی یوسم نبه مدهش بکنه و آقا با زمان تعریف بکنه فعن لم یفعل اگر این کار نکرد فاید کفرم نعمه کفران نعمته یا اگر کاری رو برای شما کردن مثل او برش انجام بدین یا لاعقل از اون منه و تجرید و سرای بر او بگین به الا کفران نعمت حدیث شماره هفت این رو از مستدرک نعا کرده تفسیر ما همه که چاپ شده هست جنده چاپ بعدی مستقیم هست تفسیر نعا خب این هم که فوق العاده ضعیف احتیاج به بحث ندن حدیث شماره 8، دیگه چون امالی شیخ توسی و مفصل شهر دادیم دیگه احتیاج به تکدار نداریم در داره حد دستانی از این پسر شیخ توسی است که گفتیم نجب آله اخبار از شیخ الوالد که مرموم شیخ توسی نجب و بغداد آله اخبار و محمد بن محمد شیخ مفیده که بغداد آله اخبار و عبال حسن و احمد بن محمد جرجرائی به نظرم اینها جزوی مشاریخ بغداد باشند بعد یک مقدارش به هم میخوره ترتیبش یه نیمتونی تشخیص بدیم یه ما داشتم کوفه هستن انقصر عبد دردان عبد دردان به نظرم میاد از وسط هاش همون اصحاب بن عبدون این هایی در طرق اهل سنت واقع میشه. من فعلا حدیث رو رو طرق اهل سنت نم. ندارم بله اما به نظرم شبیه این رو ما خوندیم تو کتاب سیوتی دیدیم این حدیث حدیث بعدیش رو خود به اصطلاح شیخ مفید نقل میکنه بین نقل مربوم شیخ مفید یک مختصر اختلاف کوچیکی هست با نقل شیخ توزید حدیث شماره 9 قطع راوندی در لب لبا بعنه نبی ارز کنم که این روایاته است که از اهل سنت بوده سواب اعمال که این سندم اصل زعیفه از به اون حدیث خطبه تو نبی اون هر ثابت نه ظاهرش نشون میده که این حدیث ریشه در اهل سنت بوده ریشه حدیث در اهل سنت بود. باز مرحوم مستدرک از رب لب و من منقتی به او اخور المقبت مست این منقتی بده او اخور مست احتمالاً همون روایت ابلورد باشه جعفر, م... جعفر حدیث شماره چهار حدیث شماره دوازده از اختصاص شیخ مفید نظر امیر مویدارجان یختاب و رجان حسن علیه السلام بعید قبولش و ارمان است و اصل مصنع هم واضح نیست حدیث شماره سیزده از شیخ الفتوح رازی این مرسل از رسول الله بان از سامع ال غیبه احد المختارین خب تا اینجا تمام شد البته بعد ایشون یکی دو حدیث دیگه هم از که اونها هم مشکلی اگر ما باشیم متفق قاعده خیلی دلیل واضح روشن سندی در اینکه حرمت سماع غیبه غیبت قرمت خود و پیدا نمی کنیم اما این مسئله جزا مسلماته حالا دقیقا فرمانیم این اصلا جزا مسلماته این الان تمام به روایدش خوده جو باید وقت مطلب رو اینقدر روایت میان بعد رو نگاه میکنه مجموعه روایت درست در نمیاد اما این مطلب جزا مسلماته که از سامه ها احدود مختابه و احتمال هم داره که نیاز بیه نباشه اینشان ها بر متعرض میشید ولی بعضا کن بعضا شاید ماده اختیاب اینه حیعت اختیاب که اینجا باب افتعاده شامده هر دو بشه خب به قطعه کنید اقتاب یعنی چه این که چون باب افتعاد برمشه ایگه اقتصاب مالم اقتاب مؤمنم یعنی خودش رائبانه پشت سر بود یا گوش بده همین که پیقدر گوشم بده من همونم مثل همون دیگه فهمه رو کنه به این نیز خدا آیه شامل بشه من عمدن همه روات خوندم که بگیم ممکنه که البته از همش مشهورتر این آخری بود که مرسله مرحوم عبالفتوه رازی از سامه و احد لکن لیکن خب روات دیگه هم بود البته ادیشون هم رد قیبت بود نه این که از سامه بینکه این حرامه که رد بکنه اگه غیبت بود رد بکنه الان این که به ماکان اصل این مطلب مسلم و متفقون علیه که سماه ریبت حرام است به خود ریبت نکه دعای که که خوندید به لحاظ سندی خالی از شبه و اشباد نبود و الله علیه و حمد